بسم الله الرحمن الرحیم اقسام المشتق اقسام مشتق ببینید ما در چند درس پیش اگر یادتون بیاد خونده بودیم چی رو مصدر رو مصدر با تمام حدود مصدر مونی اسم مره رو اسم حیعت رو که اینا هم خودشون مصدر بودند و عمل اینا رو برامت کار کرد توضیح داد که عمل فعلش رو انجام میده ولی خود مصدر از مشتقات نیست بلکه مشتقات از مصدر گرفته میشن مشتقات چی میشن؟ حالا این مشتقات رو که متره میکنه میخواد بگه که این مشتقات عمل انجام میدن مثل فید مثل چی؟ مثل فید اقصام اولین نوعش اسم الفاعلی و سیاغ المبالغه اسم فعل صيغة مبالغة. العلم نافع. العلم نفع. العلم نافع. العلم نفع. الجندي طاعن. الجندي متعان. الجمل حاقد. الجمل حقود الله عالم. الله أليم. العاقل حاضر العاقل حذر امثله گروه اول خبر همش اسم فائل بود تمام این جمله اعرابشون مبتدا خبر هستن امثله گروه اول خبر فاعل اسم فائل بود و در امثله گروه دوم خبر چی بود صیغه مبالغه بود حالا میخواد بگوید که اسم الفاعلی قاعده صدوسیاكم اسم مسوغ لما وقع امنه الفعل او قام به میگه اسم فاعل اسمی است که درس شده است برای آنچه که فعل از آن واقع شده موقعی که میگیم ناصر یعنی نصرت از این چیکار شده است انجام گرفته شده است موقعی که میگیم زارب یعنی زرب از این چه شده است واقع شده است به همین شکل پس اسمی است که ساخته شده است لما وقعا من هل برای آن که فعل از آن چه شده است واقع شده است او قام به یا فعل به وسیله اون چه شده است قائم شده است انجام گرفته است 121 من قاعده يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل اسم فاعل الثلاثي بالوزن فاعل درس مشي بتنيد بالوزن شي ناصر زارع قاتل جاهل عارف ومن غير الثلاثي اما در غير الثلاثي على وزن مضارعه بر وزن مزارعش مثلا اکراما یکرمو این سلاسی نیست منظور حرف بیشتر داره سلاسی مزید هست اینجا چطوری درست میشه؟ علا وزن, وزن مزارعش اکراما یکرمو بر وزن یکرمو هست درست میشه؟ به ابدال حرف المبارعتی میمن مزمومتن میگه حرف مزارع که همون یا هست تبدیل به چی میشه؟ میمن مزموم یکرم یا رو برداریم به جشنی مزموم یا رو میشهد پس اسم فائله از غیر سلاسی یعنی اونایی که از سه حرف دارند خیلی ساده درست میشه همون مزارهشون حرف مزاره رو تبدیل به میم می میکنیم مثلا از یستخدیمو میشهد مستخدیم میشهد چی؟ از یقاتلو میشهد چی؟ مقاتل پس اسم فائله و کسی ما قبل الاخر ما قبل الاخر هم کسره داره اسم فایل مکرم مستخدم مجتمع این آخر این هم تریغه ساختش بود که توزیهش داد، اما قائده یه سد و و اسم الفاعل انده قصد میگه اسم فاعل. اینا رضو از اینجا برد میگه اسم فائل تغییر میکنه یحول اسم الفاعل این قصد المبالغتی الى فعال تغییر میکند اسم فائل هنگامی که قصد مبالغه ای باشد به چه سیغه ای؟ به فعال او مفعال یا مفعال او فعول یا وزن فعول یا او فعیل یا بر وزن فعیل او فعیل یا بر وزن فعیل پس اسم فعال ها موقعی که میخوانیت تبدیل بسیغه مبالغ کنن بر از این وزن ها میره یا فعال یا مفعال یا فعول یا فعیل یا فعیل چرا نگفته بود توضیح نداده بود که بر فلان وزن خاص تو اینا سماین قیاسی نیستن قیاسی بر... آره عره ها کدوم و بر وزن کدوم با بردن برای مبالغه محمولو بکنی ونید مثلا غفره سیغه, سیغه مبالغهش میشه چی؟ غفار دیگه ما اگر عره ها بر وزن فعیل نبوردن اونو دیگه ما هم نمیتونیم بر وزن چش ببریم فعلش ببریم بله پس سمائی هستن وهذه الصيغ سماعية ان صيغها سماعيه سماعي هستند ولا تبنى إلا من الثلاثي و صيغه مبالغه اسم مبالغه بنا كرده نميشد مگر از ثلاثي يعني اونايي كه ثلاثي هستند مثل غافر مثل حامد مثل ذاكر اینای که سلاسی هستن و نادر بناؤها من غیری و نادر هست بنای سیغه مبالغه غیر از سلاسی مثلاً در پای مثال در خودی بحث کتاب مثال آورده است بشیر بشیر سیغه مبالغه چه از انذاره انذاره سلاسی نیست سلاسی است میگه این چیز نادریه میگه این چیز پس میگه سیه مبالغه از ساصی درست میشه و لطببر من از و نداره اوها من غیریی و اینی که غیر از درست شده این هم بل چسب نادر هست خیلی کم هست نادر دیگه نمیدونید به ندرک یافت می شود. بله. اما این چه بود اینی که اینجا توضیح داده بود سیه اسم فاعل ساخت و ایناش بود عملشو در این درست بعدی توزی میده عمل و اسم الفاعل عمل اسم فاعل چه عملی انجام میده عمل فعلش رو انجام میده مثل مستر مثل چی؟ مثل مستر الامثله انا شاکرو نعمتک نعمتا مفول بهی هست مفعول بهی شاکر هست مفول بهی چه هست من شکر گزار نعمت تو هستم انا شاکر و نعمتک نعمتا چی هست؟ نقشش؟ نعمت در اینجا مفهول هست باره مفهول بهی هست آمل شاکر هست که اسم فائل هست اسم فائل عمل فعل کرد باره عمل فعل کرد فائل رو مرفومی کنه و مفهول بهی رو منصوب لا بهنجاحدی فبلکن اینجا هم فبله مفول بهیه جااهد است. اما اینجا الفلام داشت اینجا اسم فاعل شده داشت؟ در سه چهار سال بعدی الفلام نداره. ما حمدون از سووق من ربح. خب نیست. ستایشگر بازار را مگر کسی که ربح کند یعنی ستایش نمی کند بازار را مگر کسی که چیکار کرده است سودیگیش آمده است خب اینجا محمدون از سوقه از سوقه چرا منسوبه خاطر بله ستایش نمی کند بازار را مگر کسی که ربح کرده است این من همچیش هست فائلش هست پس از سوق مفهول به هست امون جی انتم وعدکم چار سال آغار چون در چار حالت با چار شرط ببینید با چار شرط اسم فایل عمل فیل میکند که این شرایط شد در قوائد ذکر میکنه یکی این که میاره دیگه تکرار نشند اخوك مؤتي الناس حقوقهم حقوقه مسلوب شده اینجا یک دقتی داشته باشید اخوک مؤتي الناس حقوقهم معطي اینجا چون از افعالی بود که متعدی به دو مفهول هستند میبینیم دو تا مسئول داره یکی مفهول ناس هست ولی چون مضافه به ناسه ناس لفظا مجروره ولی محلا چه هست معصوله ببین مقت ناسی دهنده چه مردم پس ناس چه هست مفهول به هست حقوقه باز هم چه پس دیرید که اینا عمل فیل شن میکنند یعن اگر فیل شن دو تا مفهول داشت این اسم فائل و اسم مصدر و بقیه و بقیه هم چند تا دارن؟ دو تا دارن بله یا مثلا در مثال ششمی ما میبینیم که ما چه ستا مفعول به داریم چون نرا از فیلهاییست که متعددی به چند مفعول است به تا. نرا رجلا قاعدا بعیبا دیدی دلم؟ نه. یه دقیقه دیگه داشته باشید نرا رجولن قاعدن بعیرن این ترکیبش چه ببینیم ربینیم از سمعفولی هست یا نه گرچه نرا فعل مزارح هست فائلش چه هست <تصفيق> نحن مستفر وجوبا رجولاً كي هست؟ مفئول بهي هست ما لدنا البته قائداً قائداً كي هست؟ اسم فائل اسم فائل كهاز نخشش جهست حال نیست صفت هست نرا رجلا قاعدا صفت هست خب بایران با مفول به قاعدان هست بایران با مفول به چه؟ قاعدان هست پس اینجا یک مفول داشت نرا بیاید روی قواعد يعمل اسم الفاعل عمل فعله اسم الفاعل كيف رأينا ؟ عمل فعله أمل فعل شو أنجام مده فإن كان لازم رفع الفاعل اگر اخلاك فعل افعال لازم باشه كيف رأينا ؟ لا فاعل رفع الفاعله ده جمع فوله وإن كان متعديا رفع الفاعلة ونصب المفؤول به اگر متعدي باشه فاعل رو مرفوم يگار منصوب. خاب لا سادوس تجارون لا يعمل اسم الفاعل إلا في حالين عمل أنجم نميدة عامل نيست اسم الفاعل مقر دردو حال. يك الأولى أن يكون محله بالألف واللام حالته أبلاشينك ألف لام داش تباشي ما دو مثال أبلي أنا شاكير نعمتك لست بالجاحدي فضلكم. پس دو حالت عمل انجام میده یک الف داشته باشه با اصلیه تو ان على الحال دومین دو حالتش این است که دلالت بر چی کند قول استقبال یعنی معنی حال استقبالو داشته باشه به معنی گذشته نباشه و يعتمد على نفي و ببینید کافی نیست که فقط به معنی حالو باشه بله و اعتماد کرده باشه بر نفی مانند ما حامدون. بله بله من منفی هست مانند ما حامدون از الا من ربح پس حالت دوم اینه که دلالت بر حال یا استقبال بکنه و اعتماد چی داشته باشه بر نفی یا استفام مانند امونجزون امونجزون انتم وعدكم اسم استفهام است منجزون مبتدا است منجزون چی است مبتدا است انتم چی است انتم اجازه مشبات فاعل برای اسم استفهام معطوف نه انتم میگید معطوف چی ها میگید عمل فعل داره میکنه فاعل برای منجز میشه فاعل برای منجز صدمصدر خبر است اگر یاد تان بیاد ما یه جایی خوندیم که خبر دو جا بود. جایی که مبتدا مشتق بود و اه اه اعتماد کرده بود به نفیا استفاد. اونجا دیگه دنبال مخبر نمی گشتیم. پس انتم فائل هست. صده ما صده خبر هست. وعده مفعول بیهیش هست. برای؟ آره دیگه نیاز به خبر نیست. دیگه همین فائل صده ما صد شده. پس وعدم افول میشه مال منجز کم که خوب مضافن اله هست پس حالت دو اینه که دلالت بر حال و استقبال بکنه و اعتماد کرده باشد بر نفی یا استفهام او مبتدا یا اعتماد به مبتدا کرده باشد ماننده اخو که معتناصی حقوقهم هم اخو جه هست هست کاف مزافون اله معتناصی خبر هست حقوق مرخولویه معطی هست هم هم که مزافون اله هست پس یا اعتماد بر نفی کرده باشد یا استفهامی یا مبتدای مانند مثال پنجم او موصوف او نه معتناصی به خاطر اینکه معتی مضافه به ناس است. ما قبلا خوندیم که اسم فائل یا مثلا در مورد مصدر خوندیم که مضافه به چشمی شد بله اینجا هم این معتل ناسی مضافه به معمولش هست لفظن مجرور هست ولی محلن منصوب هست به خاطر این که ناس مفعول به معطی هست معنی انجامش لازمه اینطوریه ها؟ چون سلام علامانش بس و بخاطر اینکه مفعول به هست. میدهد مردم را برادرت دهنده مردم از حقوقشان را خب مردم را عمل انجام ناس عمل واقع شده. اقتاش شده. نرا خب او موصوف یا اینکه اسم فائل اعتباد به موصوف کرده باشد یعنی خودش صفتی برایش باشد. هذا موصوف رجلا نرى رجلا قائدا بقيما رجلا كما قيل به موصوف است جلس موصوفه بلى قا صيغه مبالغه مثل اسم فاعل حسب بخاطرين هر دو تا رو با هم آورده بود تعمل صيغه المبالغه عمل اسم الفاعل وشروطه عمل عمل انجام میداد سیغه مبالغه همون عمل اسم فاعل را با شرطهای اسم فائل که بیان سده صد مسد خبر صد مسد خبر فائل هست صد مسد خبر هست وعده کم در خیلو فائل وعده مفهول بهی کن مضافنه وعده کمه آره وعده خوبص.